قاب من کنه. او ساعتمون کی بعد باشه؟ یان آخره من چون نمیدونم که من بدونم حالا دوخت شروع ما به آذان نخوریم آیا؟ یا پس مثلش شروع شروع کنید با رو باقید. ممنونم. ببین. خواهد بین سوالاتو یه مموری میذاریم باید. نه نه نه. شما با من کاری نداشته باشید. بگید انجام بریم کارتون رو. این باید. کنید. خلاهی. باید. به نام خود شروع کنید. خب. بسیلال بگیم. زیرا که که این سره الان شما من هم چطور داشته باشم اینو پاورپوینت هم داشته باشم آه ایه. میشه کنیم آه تا, تا موقعی موضوع... نه الان با این شروع نمی کنم الان هنوز کار داریم پاورپوینت با... رو با بله بله, بله. نه حمد رضوی کار که تا بشه اینجا جواب شما الان من بیشتر بیشتر داره راهنمایی میکنه. میخواید که سلامتی من، اعتماد سلامتی جلسه دوم رو در حوزه بحث مسائل و بررسی مسائل روزونی و اهمیت مسائلهای مربوط به تنظیم شروع می‌کنیم. جلسه کاربر رسیدیم به معرفی مصحف مشهد وزاری به عنوان یکی از مهمترین اسناد باقی از صدره نوسطه هجری. این سند قرآنی هم که گفتم از پایان قرن 5 هجری توسط یکی از مطلعان و مفسران نیشابور بر حرم زردوی سلام الله علی وقت شده و از اون تاریخ در اینجا نگهداری می شده اصل این نسخه آنچنان که شواهد درون محنینشون می ده اصل این نسخه در شهر یا منطقه مدینه که شده با توجه به ویژگی‌های درون این نسخه از جورد بررسی اختلاف و مساحب الامسال یعنی ویژگی‌هایی هایی که مختلف پنج شهر مختلف داشتن یه اختلاواتی با هم دارن پنج شهر اولیه‌ای که میگوین خلیفه سوم مصحف‌ها رو با یه جدول داریم اون جدول وقتی بررسی می‌کنیم این تفاوت‌های بین پنج شهر وجود داره تو این نسخه وقتی تطبیقش می‌کنیم می‌بینیم که با منطقه مدینه خیلی خیلی خیلی بیشتر نزدیکه تا مناطق دیگه علاوه این که شیوه پایان‌گذاری آیات همون عبدالآی هم با منطقه مدینه می‌خوانیم. می‌شوند راهای طلاوتی اما بعد از دوران کتابتش، احتمالاً تا یکی دو هم در خلاق به خصوص احتمال زیاد در منطقه کوپه نگهداری می‌شده و ما نمی‌دانیم از چه طریقی، دقیقا این نسخه به ایران رسیده. و هر روابط بین این مناطقه مثل اصفهان و ری، این دو تا شهر مهم با بغداد و منطقه عراق از حیث علمی و رفت علمی تو قرن دوم، سوم، چهارم خیلی خیلی زیاد بوده و از اونجا به احتمال زیاد راهی نیشابور شده. دست کم یک قرنی ممکنه در نیشابور بوده باشه و از نیشابور هم که بر حرم رضوی وقش شده دیگه از سال حدوداً 500 ده هجری تا الان نسخه در حرم امام رضا علیه السلام نگهداری میشه. من این نام و مشهد مشهل رو بر مجموعه اون دوتا ای که بخش اول و دوم قرآن رو تشکیل میدهند نهادم قسمت اول سالمتر یعنی اون 15 جزء نخست که از آغاز تا پایان سوره کهف رو دربر میدیره یه دی خورده سالمتره نسخه شماره هجده هست یعنی کتاب خانه شماره شماره هجده هست. تکی رو که از بعد از سوریه که این از سوریه مریم شروع میشه تا پایان قرآن این نسخه، این دیکشت شماره خیلی دورتری خورده، شماره چهار و اطراف اوراقش هم خیلی صدمه بیشتر خورده اینا در وقت ۲۰۰۰ سال, سال پیش مرمت شده و به این صورتی که الان شما در تصویر سمت راست میدینید در یه وقتنامه ای در آغازش داره که واقع در اون وقتنامه میگه که این نسخه رو وقت رو بر حرم کردن و اهل ساری هم بوده گویا در وقت مقرر سرزی نامش هست این وقتنامه رو به خط کوفی ایرانی نوشته اینجا هوز المصاحف، باهوه بخت امیر المؤمنین، علی بن علی طاهر بن السلام، وقف علی مشهد السید الامام السید الشهید علی الحسن، علی یبن موسی الرضا رحمة الله علیه. الموزو بتوس خیلیم عربیش خوب نبود، علی خلالم بود بتوس، بتوس. رقته هو مالک هو علی یبن علی القاسم المقرئ السردي، این دوست. تقرباً الى الله عز و و طلبا به مرزاقه بلغاً لاه و آمانه این وقتنامه است که او نوشته سرایی بوده، اهل ساری بوده ولی خودش سالهای سال به از طبرستان هجرات کرده و خانوادشون خودش به نیشابور آمده بودن اینو آدمشون که کی،, کی هست؟ آدم خیلی معروفی نیست، باید محدثان عرض سنت و اسمش در درانی از حضاقات شایردان میشه استادان سمیخانی هم آمده اگه به درون متاسفانید این, این فایدی که الان من دارم بعضی صفحاتش فونتش رو خوب نشناخته یه فرد به هم رفتگی داره دیگه این رو باید تحمل بکنیم من نتونه سمیلید این فونتها رو با این کامپیوتر کرده این جهاز نمیخونه فونتها یه بعد برمشون بر بده اگه حالا بخواییم یه فرد ویژینهای املای رو ببینیم. همه اون چیزایی در نسخه های حجازی گفتیم، تو این نسخه متکمل شده رازی از نزدیک ببینیم. کانه رو هست که با اسقاط الف تو نسخه‌های حجازی می‌دیدیم و می گفتم که حتی یه نسخه، حتی یه دونه کانه رو کانونش توی طایفوسی با اسقاط علیف، با این املای ناقص پیدا کنیم. الان توی این نسخه متکمل شده رازی من اینا توی این ستون آخر نشون دادم. مثلاً سوره ماهده آیه 62 ماکان و یحمد رو نمیشه شونه ماکن رو ما و یحمد یعنی به اثقاط علف میشه ولی همون تلفظ کنه میشه همون کانون خونده میشه این هم بدون علف کانون دوباره در سطر پایینیش یکترون کانون ظالمی کلون کانون ظالمی کنون اینو علف ندارن به ماکان یکترون اینجا کانون شون تاپ بعد ذوها هستند ذوالفضل ذو فضل ذو اسره ذو همه اینا با یه الف اضافه می ببینید زوا،, زوا زوا زوا یه اضافه در املای ذو ما توی نسخه میبینیم اولو اولوال علما اولوال علم اولو تاول و, اولوالعباق و اینا تو مختلف هست تو مصحف مشهد اینا همه به اسقاط الف به اسقاط واو بهش ازقاط با در صورت اولا نوشته شده. اونوار تصویر واضحه باشه. من اینجا هم باز دوباره بزرگ میکنم. ببینید توی من، توی قسمت اولا، اولا، اولا. ندارم ندارن. و این املا و رسم کوهنه است که در موسیقه مشهد میدید. ما خوب شد گفتیم. چرا اولی اولوه؟ ببینید؟ چرا اولوه؟ احسن اصلاح شده اون دو شاخه لا رو میبینین یه نفر یه نفر تو قرن سوم رسیده به اینجا گفته چرا اینجا باب نداره اونو برمشته پاک کرده جوهرش اون دو شاخه لا رو میبینین یه دونه اینجا اضافه کرده و این اصلاح خیلی عمل طبیعی و عادی بوده ولی اصلش قلاع هست یعنی در املای اولی خب چند تا املای قریب مثلا روز روهوس، این املا اولاً در یک نسخه کوفی دیگه شما تا الان تو همین الان به خط نصف نمیدید را نوشته میشه این علفی که اینجا میبینید ببینید اینجا روهوس و روهوس هم سوره بقره آیه روا فلا کن و اموال کن و این طبتم فلا کن و اموال کن این روهوس با علف نوشته شده اف ادف با علف نوشته شده سیعه با کرسی علف نوشته شده لا یعود و هود مثل لا یعود هود شده سو کلمه سو سو رو چجوری می الان ما امروزه املای سو عبارت است از سین و واو هیچی دیگه هیچ حمزه رو چند قرنه می چند قرنه بازی یا می زارم همزه رسم کلمه سو نیست راجع می‌کنید چند قرن اول اول جزیره اینم ولی تو قرن اول برایش میگذاشتن ببینید سو سو آن اویاستم رسمی اینه این سو اویاسته ولی تو اول یه دونه سو آن تو نسخه مصحف مشهد اینجوری الان همه سو هاش یه دونه داره داره علامت شیشی که ما می‌ذاریم اول دوم سوم چهارم اینا اصلا هیچ وقت این بیشگی املادی وجود نداره برای نشان دادن ما سوء سوا همزه های آخر هیچ علامتی گذاشته نمیشه عبدا هیچ علامتی گذاشته نمیشه ولی در رسم اولیه قرآن حجازی یه دونه الیف میگذاشتن و این جز قراره بر رسم برای کلمه سو. ج توکم از اون خیلی جالبه ج توکم می ببینید یه دونه می بینیم. مثل جای میبینی الفه اینجا جزء رسم‌های اتصافت و غریبه. شئتا شای نوشه من یار یه خود بزرگ کنم این بوته شئتا شای نوشه شده. ج تمام جای تمام نوشته شده. ج نال، ج ج این علف اینجا باز الان ما زائد می می‌کنیم ولی اون موقع نشانه کسره می‌گیره. این الفه نشانه فقط کسره بود که تو کلمه شعی اون علف وسط نشانه فتحه بوده حتی بحث بحثای خیلی جزئی و ریزی داره و من میگم یه توجیهی هم برای اینا وجود داره که تو قرن اول چرا این الف ها برای کسره فتحه یا زمره به حساب رو یاد بیاریم که توبا یه یعنی نوع علف میدیم که اون نشانه زنده تاء بوده این کارکرد علف تو قرن اول بوده که از بین رفته بیده. ما الان به اون صورت به کارش این یکی هم جعناکه علفش حذف شده و اینجا متصل شده یعنی اصلاح شده هم باز هم مواردیه که یه کسی بیمون نسخه دوست خرابی خونده و ممکنه اون رو به رسم جدیدی اصلاح میکرده آه یه اینکه هست یه میزهرم شما, شما قراستون کوفیه الان به ارم میبین به به گرگ میگین ده بر. ولی اگه تو مدینه دیگه اصلا نمیشنوین اونا میگن بی دیر. دیر اصلا حمزه نمیشنوین اونجا این ویژگی یه که با صدا و فونوتیک ارتباط داره بله. حتی تیزی حمزه کلماتی مثل مؤمنون اونجا هم شدی نمیشه اونجا گفته میشه مؤمنون یو ما, ما این این لفظ این تلفظ رو از قاریای کوفه داریم و قرائت به خصوص حفص از قاستن منطقه مدینه اینجوری مثل. ما من الا لا اله الا هو ببینید لا الهه دندونه اینجا می‌بینید الای هسه الای می‌بینید در این مصحف مدینه مصحف مشهد همونه ما من الوه الا الهه الا الهش دنجونه داره نوشته شده الهی ولی صدای عامه صدای آلنده انجونه این یه جدولی از اون چی که ما هم بهش میگیم اختلاف مصاحف امثال دوستان علوم قرانی کتاب کتابای قدیمی در مورد مصالح قدیمی نوشته شده مثل کتاب مصاحف سوجستانی مثل فزار القران ابی کتاب های تفسیر مراجعه بکنن اختلاف این پنجده شهر اولیه‌ای که مصحفهای امان به اونجا فرستاده شده رو اونجا صفت رو ضد کردن حدوداً و دو سه مورد هست که بین این مساهم این پنج شهر از همون قرن اول تقاوض وجود داشته مثلاً تو آیه 133 ستوره آله امران تو مصحف مدینه و سار او الا مغفرت این نوشه شده تو مصحف کوفه سار او الا مغفرت این نوشه شده یه دونه اضافه میبینیدن اون یا مثلا تو آیه 132 و و دوی و ها مبنیه هست در قرآن، در مصحف های و در مصحف شام و مدینه و او ابراهیم ها ابراز و هست این جدول اخترافه های مساره هست وقتی ما یه نسخه قرآنی, قرانی قرن اول دوم پیدا می کنیم برای اینکه بکنیم، یکی از راه که بکنیم بوم جغرافیایی این نسخه رو کشف بکنیم این است که یه به این جدول مراجعه بکنیم و تون این جدور ببینیم که این موازع اختلاف های پنجت و شم با کدوم که از اونها بیشتر نزدیک و قرابت داره من این کار در مورد مصحف مشهد انجام دادم این بالا نوشتم مدینه، مکه، کوفه، بسره، شام این آخرن نوشتم مشهد این جدور و مساحف الانسار که تو ستون آخر این آهید سردادیه که شما میبینیم تقریبا همشون با مدینه مطابق هستن این زرگای ستون اول همشون با اینجا مطابق هستن در دو مورد فقط در دو مورد یکی آیه صد سوره توبه و آیه 95 سوره که با مدینه مطابق میسن که اتفاقا در اون نقطه با مکه مطابق هستن ولی این تطابق رو با هیچ کدون از اون شهر که به این اندازه نداره این یکی از اون بحث‌های علوم است که تو نسخه به کار میه تو بحث به کار نمیه میده بوم جغرافیایی که این نسخه توش کتابت شده آیا شام بوده یا منطقه عراق، مصر و مکه یا منطقه حجاز و مکه و مدینه بوده اما میرسیم به اون ترتیب سوره هایی که تو جلسه قبل هم عرض کردم میتونسته یه نسخه احیاناً با ترتیبی متفاوت از سوره ها و از قضا از این نوع نسخ ها بود. و از اهمیت اه های این نسخه هست که ما رو با یه سند اینی از قرن اول رو میکنه که نشون میده ترکیب های هم همچنان در منابع ما اومده واقعا وجود داشته من این نسخ رو وقتی تحقیق میکردم از اول تا آخرش که می زدم هر جا به ابتدای یه سوره یا انتهای یه سوره میرسیدم میدم خط عوض میشه در خط کاتب اون تغییری تغییر پیدا میکنه حالا یا انتقال یه سوره تغییر میکنه یا ابتدای سوره بعدی انوار با یه خط جدیدی نوشته شده و یا هر دو هر دو کلا با یه خط متفاوتی از نو بازنویسی شده ولی قبل و بعدش یعنی صفحات قبل و بعد همون خط اصلی حجازی اصلی نسخه تمام سوره ها این اتفاق افتاد و من این فرض رو که این تیکه ها دستکاری شده یعنی خیلی واضح اولین چیزی که نسخه شناس متوجه میشه اینه که این تیکه از بنون نوشته شده شون آثار پاک شدگی پاک شدگی یا شستن و آسی از جوهر قدیمی تو خیلی از صفحات پیداست حالا چند تا شو با هم میبینیم الان اول مرور بکنیم تا به نتیجه بخایم برسیم ببینید الان اینجا پایان سوره انعام هست اینجا انتهای سوره انعام هست و انهو لغفور و رحیم این تی که سوره این صفحه مقابل سوره بگذاری درستشم بکنم این قسمت صفحه سوره اعراف هست ولی آغاز سوره اعراف ببینید در اینجا با یه نوشته سورت ال اعراف نعتان و سه آیات آغاز سوره اعراف با یه دستخط کوفی متفاوتی نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم علف لام میسال کتابم اون دل، اول، اولتر، اولایف. این دستخط با این دستخط فرق میکنه. این دستخاتی که اینجا میبینیم، اینجا من کشورها حرکت میدم، شما نمیبینید. من دستخط سمت چپ که بازرسی سوره آغاز استوری عراق هست، با ادامه استوری که به خط الهجای اولیه هست، خط فرق میکنه. با این انتهای استوری با انتهای استوری انoman فرق میکنه. مشخص است که این چی پاک شده و یک سوره دیگه قبل از آغاز یه سوره دیگه ای بوده و این ابتدای سوره اعرافو نمیشتم برای که این اتصاله بین این دو تا برگ برقرار بشه. بریم تصویر بعدی رو ببینیم. اینجا. اینجا در سمت راست انتهای سوره توبه رو می‌بینیم و در سمت ابتدای سوره یونوس رو میبینیم در بالای سوره یونوس یه به خیلی خام و ابتدایی ولی آثار پاک شدگی از یک نوشته قبلی موجوده مشخص است که اینجا یه سوره بیگه انگار تمام میشده ولی این رو پاک کردن تا این ابتدای سوره یونوس به انتهای سوره توبه بس بشه حالا یکمیم یک دروشش بکنیم آثار پاک شدگی دست خط سیاه شده اون قبلی هم تا یه حدی پیداست اینا دیگه این نوشته بعدیه، یک کسی مثلا نوشته حاضر مصحف، مکتوب و نظررخ به خط عمیب المعنمین، علی ابن عوی طالب علیه السلام یک کسی بعداً و به این بالا خط قرار پنگ و شیشون بدید مایده اون رای نظام بود، با اونش کاری ندارید که اما یک قسمت از یه سوره نبوده، انتهای یه سوره دیگری بوده، مثلا سوره یه اعراف بوده انتهای سوره اعراف رو اینجا سوره یونوس دیگه شروع میشه؟ اینسوره یونوس به اینجا الان به سوره توبه بست شون. نه نه نه کل برگه ها جابجا شده یعنی برگه های سوره یونوس رو اوردن به انجاهای لاجوه کل برگه های سوره یونوس رو اوردن چسبوندن به آخر سوره توبه فقط اول سوره یونوس یه پایان بندی دیگه ای داشته از یه سوره دیگه ای اون دیگه رو فقط پاک کردن درست شده جانم؟ بله جایی دیگه مجبور شدم بنیمیسن ببینید ترتیب ابن مسود رو برای شما بگم خلی سال دوسته سوره اول قران رو با هم مرور کنید سوره بقره بعد سوره آل امران بعد سوره نسا بعد ماهده انعام این پنجت سوره اینا در ترتیب ابن مسود اینجوری هست بقره نسا آل امران و بعد انعام ماهده خب حالا به همی ستا اول توجه بکنید وقتی بقره تمام میشه در ترتیبه این مذبول نسا شروع میشه اینا برای که این نسخه رو اصلاح بکنن کل صوره آل را رو برداشتن او برداشتن امتهای صوره بقره فقط مشکلشون چی بوده؟ اون سخهی که توش بقره تمام میشده و نسا شروع میشده خب اون تیکه نسا رو مجبور شدن پاک بکنن افتدای صوره آل امران رو بنیمیسم اینجاست که دستخوردگی و تفاوت خط خیلی مشکوله ولی این اتفاق، این دستخوردگی فقط و فقط و فقط در هشت جا اتفاق نیفتاده یعنی من کل سوره رو که مرور کردم هم هش هشت جا هست سر سرسوره ها که به هم میرسه خط دست نخورده یعنی نه انتهای سوره قبلی و نه ابتدای سوره بعدی و نه اردوت هیچ کدوم از نو بازنویسی نشده با یه خط جدید با همون خط اولیه، یه حجازی باقی مونده. حافظه رقم این هشتایودی می‌داشتن. یک،, یک،, یک نکته نقطه‌ای تو این هشتا بوده که دست نخورده. ولی رو الان بریم جلوتر باز دست‌خوردگی‌ها رو ببینیم. اینجا سوره مطمئنه تمام میشه سوره ص شروع میشه. پایان سوره مطمئنه رو کلاً خالی کرده، یه کرده، گفته خب از هاب و قبور، آقایان سوره، این ابتدای سوره سبت همین بالای برگه هرچی بوده اونالا یه ارتفاعی داشته که اینجا رو پاک کردن ولی که این اتصال برقرار بشه. چند تا ببینیم؟ ها، این نمونه. اینجا انتهای سوره واقعه و آغاز سوره حدید هست. انتهای سوره واقعه رو که پاک کردن یه تذیبی هم برای که خالی نمونه یه تذیبی هم اونجا بداشتن و این هم سوره منافقون که بحث میشه به سوره تقابل این بالا آخر سوره منافقون برای این را اخیرا لاحون هم و ها و عجله ها به ما تعملون اگر اشتباه نکنم این دست نویشتهی که این بالا میبینیم این دست نویشته به یه خط ببینی درشت بکنم این تصویر رو درستانگی سید. درستانگی سید. درستانگی سید. این دسمیه این دسمیه که اینجا میدید با خط هجازی که در پایینش سیزینی فرق میکنه. این بالا بازمیدیش شده که ای اینجاهای سوره از طور که منافقونه که این اینجاها بس بشه به سوره تقا اون هشت جا حالا چرا تغییر نکرد؟ جا وقتی به منابع اسلامی مراجعه میکنیم مثلا به که ترتیب سوره ابن مسعود رو بیان میکنند، میبینیم که ترتیب صور در ابن مسعود در هشت جا یعنیم در هشت موزه با ترتیب عثمانی فرق نمیکرده اصلا به مثال سوره هود و سوره یوسف الان در ترتیب عثمانی رایج ما، سوره یازدهم و سوره دوازده هستند پشت سرهم هم قرار میگیرند دیگه در ترتیب ابن مسعود هم منابع ما میگن سوره هود و یوسف پشت سرهم هم هستند فقط شماره ممکنه سوره مثلا سیزده و چهاردهم باشه ولی بالاخره توالی اونها پشت سرهم همه وقتی هود تموم میشه ادامه سوره یوسف شروع میشه کسانی که سن این این نسخه‌ها اصلاح می‌کردن ترتیب سوره ها رو در اینجا که رسیدن دیگه نیازی نداشتن که بازنویسی مجدد بکنند یا تیکه رو پاک بکنن یا رو درست بکنن این هشت را با هم دیگه میبینیم سوره هود و یوسف که 11 و دوازدهم هستند، سوره انکبوت و روم که سوره های 29 و 30 هستند، صبا و فاطر و 35 سوره زمر و غافر 39 و شورا سوره زاریات و طور 51 و دو البته اینا هفت هستن اینا عبارت ای مرسلات 90 اینا هفت میشن. تا میشن تو اون جزء آخر قران قرار گرفته تو سوره کوچیک کوچیک که اخر دران گرفته که اون به دلیل اینکه سوره ها کوچیک کوچیک بودن مجبور شدن که کلا اون صفات رو از نو بازنویسی بکنن که همه سوره ها برکت داشته این هفت ولی تصاویرش موجوده چند با, رو با هم ببینید در بالا در قسمت بالا سوره هود تموم میشه در قسمت پایین این رنگ قرمزی هم که میبینید یعنی بعداً اومده نام سوره یوسف رو اسم سوره رو اونجا نوشته اینجا سوره یوسفه بین سوره ی هود و یوسف هیچ گس وجود نداره یعنی اینجا مصححان و مدربن های این نسخه نیازی نذاشتن که اصلاح بکنن بالا و پایین رو رنگ چیه رو ببینید اون از نزدیک نوع خط رو ببینید که هیچ تفاوتی یا شدگی در اینجا پیدا نیست این هم یه نمونه دیگه که سوره سبع و فاتر هست باز دروشش میکنم این نقطه پایان سوره سبع و آغاز سوره فاتر نام سوره فاتر هم به نام سوره ملائکه نام شده که غالبا در نسخه قدیمی به این سوره سوره ملائکه نگویم خب این تصویرم از سوره زاریات و تور هست. اینجا پایان سوره زاریات، فبین للذین کفروا من یومهم الذی یؤدون و آغاز سوره تور، بسم الله الرحمن الرحیم و تور و کتاب المسعود و تور و کتاب المسعود. دست‌وردی، تواود، قاب اختلاف خط چیزی نمی‌بینیم. این نشون میده که کاتلی که داشته اه، آه، گروهی که داشتن این نسخه را تصنیف می از نو ترکیبش درست نوست در اینجایش نیاز نمشه یاد باشه وقتی به منابع تاریخی به کتابهای تاریخی مراجعه می این نکته خیلی واضحه که نسخه های منسوب به ابن مسعود که قرن اول کتابت شده در قرن دوم دو حتی در سوره خیلی طرف کتاب المعن قران فراغ رو ببینید تفسیر فراغ دائما به نسخه های قرآنی در موجود از قرآنی موجود ارجام می که در موجود وجود از مخصوص ارجام میده میگن که در مسجد عبد اینجوری اومده اونجوری این نسخه ها در قرون بعدی قرن چهار پنج، 6 اینا دیگه نمیتونسته تو جامعه اسلامی توی مسجد تو مدرسه رسمی با ترتیب متفاوتی که داشته از حضور داشته باشه یه امر غیر متوارمی تلقی می شده منابع تاریخی ما گزارش میکنند که گاهی وقتا در مثلا بغداد یا نمی‌دونم در اهواز کسانی ادعا می‌کردن در خونه‌شون یه مصف ابن مسعود دارن و قاضی شهر یا خلیفه به خصوص قاضی، فلان قاضی، دقیقا اسمش رو میگن. مثلا کتابه منتظم ابن جوزی شما نگاه بکنید، تو حوادث تاریخی اوایل قرن پنجم تا اواخر قرن ذکر میکنه که اگر مثلا ادعا کرد یه مصحف مسئول ما داریم وقتی متوجه شدن اینو آوردن و آتش دادن. یعنی اجازه تداوم این نسخه نسخه‌ها که ترتیبشون غیر متعارف بوده اونام در قرونی که دیگه یک ثباتی داریم یعنی یکسان اجازه داده نمی‌شد این نسخه ا این را که این دوستان ما پیدا کردن سبب نجات شده یعنی وقتی اومدن ترتیبش رو درست کردن دیگه یه ترتیب عادی بوده چون اگه می‌خواستن با همون ترتیب از منصور بگردن بالاخره تو قرن ششم هفتم هشتاد هیچو سر راه در نمیومد بالاخره حاکم اسلامی اجازه نمیداد که یه قرآن غیر متواعرف میتونه اول متواعرف بوده تو قرن دوم که تو متواعرف بوده ولی همه جای جهان اسلام نمیتونسه این باقی بمونه خب این هم آخریش که سوره مرسلات و نبر هست سوره مرسلات تمام میشه و سوره نبر توی این صفحه اینجا ببینیم و به یه حدیث بعده هون دومانویزیش تفاوله خط میبینیم و این مرسلات و نبر در پرتیب عدمتی رو و در پرتیب عثمانی پرتیبش هم سر هم هستن ایش فرقی نداره ولی تو دیگه نیگه ما دیگیم این اتفاق اینو دارم پس این رو جاز رو ویشگی است. قرآن قرآن‌نویسی در قرن اول و دوم از نزدیک می‌تونه روبرو بکنه من یه مثال دیگه هم آوردم اینم جالبه ببینیم که اه, کسانی که اینجا رو اصلاح می‌کردن گاهی ممکنه یه دم خروس خیلی کوچیکی باقی مونده باشه تصویری که اینجا می‌بینیم شاید رو پرده وضوحش زیاد نباشه ولی هم خود اصل نسخه زیاده و هم اگه عکسش رو شما زوم بکنید خیلی واضح می‌تونید ببینید اینجا سوره ملک سوره ملک شروع میشه تبارکلتی به یده ملک و علی علا کلش هم. سوره شستو چندامه سوره شستو شست شروع میشه سوره قبلش به طور تریفی در ترتیب عثمانی باید سوره شستو باشه سوره چیه تحریمه سوره تحریم یعنی آخر سوره تحریم باید به اینجا وصل شده باشه ولی شما اینجا سوره تحریم رو با یه دستخط متفاوتی می‌بینید ببینید من بزرگ می‌کنم و كانت من الحلکی این آیه آخر سوره تحریم دستخط متفاوتو همه رو توجه کنید همه واضح هست می‌بینید دستخط بالا با دستخط پایین که ابتدای سوره ملک هست متفاوته اما یک نکته این وسط هست حالا به این تذکیری که اینجا انجام شده با رنگ زرد به این کاری نداریم با این جمله فخ المؤمن بعد که بعداً نوشته شده کاری نداریم این سطر آخری که پاک شده ببین این پاک شدگی یه سوره دیگه بوده دیگه ترتیب اولش که عثمانی نبوده یه ترتیبی دیگه, دیگه بود که من گفتم ترتیبش البته مسعوده پیدا کردی ترتیبه برو. اون سوره دیگه پاک شده ولی هر همین آیه پایان آیه به خصوص این کلمه این کلمه دیدی اینجا که غمنون هست یعمدون هست اینجا من دارم کسر رو حرکت بدونید؟ کسر رو توی حالت چیز بذارم؟ توی این حالت اینجا الان کسر من لیمسات نیزر حرکت می دارم اینجا یه بینید یعنی یعمدون کمرنگ وجود داره من یه خود درشتش کردم اینجا این سفر یه خود رو برد این یعمدون آخرین کلمه یه سوره دیگری بوده و لاها خبین رو به ما کان و یعمدون یه چنین جمعه اگر اجت قل له رو به مأتمرو این آیه آخر سوره حجرات بوده این تیکه چپ شده کامل نیست به همین هنوز ما می ببینیم بعد شما به منابع اسلامی مراجعه بکنید دوباره برید سراغ فهرست ابن ندیم فهرست ابن ندیم ما میگه ترتیب نزول قرآن در مصحف عبدالله بن مسئول اینجوری بوده که سوره حجرات این سطح آخر رو وقتی ببینید سوره حجرات بعدش سوره تبارک النذی بیدهل ملک است آخری باز سوره هجراد در ترتیب ابن مسئول قبل از سوره مرک قرار می‌دهد. ما هم تو نسخه بینیم آخرین آیهی ای که اینجا وجود داشته و الله بسیم و بسیمون به مهن عملون متعلق به سوره هجراده. و این یه نشانه باز نسخه شناسی دیگه است که ما نشون میده اصل نسخه در روزگار این خود با ترتیب ابن مسئول می‌بشی شده. مقن این کار حدود مثلا پنج سال حالا تصویربرداری کامل من حالا یه توضیحی در مورد خود فایل اه فاکسی میله که انجام شده میخوام بدم اگر این کسانی که میخوان دوربین رو عوض بکنند، محبت بکنم این کار به صورت فاکسی میله برای معرفقان ما منتشر شده که در صفحه سمت راست ما تمام این 252 برگ قرآن رو 252 بر قرآن میشه 504 صفحه پونسط و چهار صفحه در سمت راست اه، اه، متن قرآن داریم این متن قرآن با همون خط اجازی صدر به صدر خوانده شده و در روبرو صفحه روبرو در سمت چپ بازنویسی شده با هر املایی که وجود داره اگر املاعش املاعی ناقصه اگر علفی زیاد داره اگر در مقایسه با رسم امروزی یعنی رسم مصحف عثمانی که امروزه در سلام قرآن قاهره یا قرآن مدینه یا مرکز ترجمه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ می‌کنه ما حالا همه قاهره رو معیار قرار دادیم اینجا چون تو جهان اسلام خیلی پذیرفته شده هست در مقایسه با اون مثلا اگر کلمه‌ای مثل عذاب در سمت سوم در اینجا عذاب بدون الف نوشته شده اون ما رنگ زرد کردیم و تو این تو حاشیه رنگ زرد رو نشون دهنده حذف حرف دانستیم. عزا و هو بدون علف یعنی یه چیزی در اینجا حذف شده با رنگ زرد میمونید یعنی یه چیزی حذف شده در مقایسه در چه جوری هر در مقایسه با رسم عثمانی یا رسم المصحف حذف شده یعنی علف نداره هر چی زرد حذف همینطوره یا اگر صفر میبینید مثلا تو سطر دوم کلمه یستاخر امروزه یعنی امروز در قرون قدیم قبل از ما این, این یستاخر بدون الف نوشته می شده و الان طور هست یه از تأخرو نوشته میشه حتی دندونه هم کرسی براش نمیذارن تو رسمهای امروزی فقط یه دونه حمزه اضافه میکنن که افرادتونم بفهمن ولی در این نسخه مصححه نشد با الف نوشته شده این الف ما سبز کردیم و تو این جدول در کنار در هاشیه در اینجا رنگ صفر رو نشون دادیم که رنگ صرف نشانه از زیاده توی این پرده ای که شما عرب داریم نبینیم این کلنه خیلی واضح نمشن. در ادامه توی این حاشیه که در پایین هر صفحه مثلا خاوراقی زدیم که دو سه احضار تو خاوراقی پا به زبان عربی من نوشتم و توشون تو هر موضع نشون دادم توضیح دادم که سیستم کلی رسم این کلمه در سنت اسلامی یعنی عل و شاگردش ابو داوود صوری مال نجام، اونا در منابع خودشون راجع به این کلمه چی گفتن؟ مثلا گفتن عذاب باید با علف باشه، یا بدون علف باشه، مستندشون چی بود؟ اونا رو گفتن. و بعد نشوندم که اگر اینجا با گفته های دانشمندان اسلامی هم سنت متفاوته، نسخه های دیگر هجازی، که تو دنیا الان نگهداری میشه، چرا نسخه هجازی هستی ما داریم، موسسهای دیگری که جذب میکنند که بکارنده اول باشند یا بعضی موسسهای خوبی که میکنند که بکارنده هوموس به هستند. در این املا آیا مشابه موسسه مشهد رزولی هستن یا نیستن؟ این پایین توضیح دادم مثلا این اینجک دست من حرکت میکنه این پایین پاوری اسامی بخشی از موسسهایی که مثلا در کلاهنان ملی فرانسه کلاهنان ملی روسیه در استانبول در استان آن اگرند دیدیم ما در اینجا مشابه داره. همراه این کتاب همراه این مصحف که همه جزئیاتش کلمه به کلمه خوانده شده و حاشیه زده شده یک در واقع مقدمه‌ای تعلیق شده با عنوان مصحف المشهدر بغوی تاریخ او و, و خصایص به دو زبان عربی و انگلیسی یعنی از طرف سمت راست به زبان عربی تا وسط و از طرف سمت چپ به زبان انگلیسی راجب همه ویژگی‌های اولا تاریخی نسخه و ویژگه های متنیش یعنی چه قرارت هایی در این نسخه پیدا میشه چه رسم های کهانه ای پیدا میشه عبدالله ها حتی نام سوره ها میتونم خیلی که بعدن کسانی که نام سوره ها رو اینجا اضافه کردن از یک نام های خیلی عجیبی استفاده کردن مثلا برای همه ما که مزاره که در هستیم اسم سوره ی علق سوره ی علا تحصیحا نهایتاً از من شنیدیم که به این صوره بعضیا یا قلم هم گفتن ولی کسی نام این صورت رو به نام صورت و زبانیه نش میگه ما تو این نسخه میبینیم کسانی اومدن در قرن سوم سوم سرم نام های ها رو که نوشتن به این صوره گفتن صورت و زبانیه بخاطر اون کلمه سند و زبانیه که داریم یا صورت ناقل ما اینش نش دیگیم صورت ولی این مدقنان نسخه در فرمی ثبت آن چهار رو بوم ثبت آن به این سوره شمس گفتن صورت آن یا مثلا سوره فرمثل تکویر رو گفتن صورت اشار به خاطر اون عالی و عدل رو صوره صوره آشار رو بلند به سوره تکویر، سوره اشار رو بوده شده این کسی نمونا هاییست که نشون میده نانگزاری ها توقفی نیست نه فقط در این جایی نمونا اگر اگر شما به سراغ نسخه های قرآنی بریم و در دوره‌های مختلف هم، همین گنجینه آسان بوت بررسی بکنید این نام ها رو در بعضی سوره‌های دیگه هم می‌بینید یعنی شاید من تو پاورقیات تو هر دوره دیگه رسالان توضیح دادم که مثلا در فلان نسخه فلان نسخه فلان نسخه ده تا نسخه رو من که اینا اشار رو به سوره تحویر اطلاق کردهن یعنی تنها و تنها تو نسخه مصحف صدر عزوی این نامگذاری وجود نداره در حال بیجدی های معدنی قرون قرانیش رو و براتون آزمایش کربن چهارده که برای سالیابی این نسخه ما انجام دادیم این تنها نسخه است که 8 تا آزمایش کربن دیتینگ در 4 تا آزمایشگاه معتبر اروپا و آمریکا در موردش انجام شده نسخه های دیگه حجازی که بعضیشون در موردشون سالیابی انجام شده یک یا دو تا آزماییش انجام شده را فقط نسخه صنعا از همون پوست دو برگیه که 5 تا آزماییش در موردش انجام شده و یک یا دو تا یا شاید حتی یک نمونه ما برای این مجموعه یعنی برای این قرآن از هر دو قسمتش یعنی هم بخش اول هم بخش دوم نمونه برداری کردیم و چون معتقدین که اصلش یه قرآن بوده و واقعا یک یه قرآن بوده به چارت آزمایشگاه کنفرانساری و مجموعه 8 تا نتیجه گرفتیم که تحلیل نموداریشون ها در این کتاب اومده یه سایتی هم را تصویر اینجا رو رد بکنم. این قیافه کلی که یه قاب از مصطح هست. یک از کنن مقدمه و یک محن بران همراه با تحقیق این فارسی میلش هست یک سایتی ما داریم به نام این قیافه درونی خود نسخه به نام کودکس مشهد دارکان آآ ببخشین شما تصویر رو بله شما دیدیم اینجا الان نمیدیدیم بله اینجا این قاب کلیه و این نسخه مقدمه است که اینجا داشتیم میدیدیم و مصحب مشهد رزاقی هم که صورت فاکس شده این تصویر کلی در اون صفحات هستش که هواشی در پایین اومده، تحقیق در صفحه روبرو اومده، متن پونه دین هم در سمت راست اومده و یه سایت رسمی هم برای زبان عربی، انگلیسی و فارسی برای معرفی نسخه آمده من یه توضیحاتی را به شیعیان هم آمده کرده بودم که شیعیان چجوری قر که احساس میکنم شاید ممکنه بحثمون خیلی به طور انجام میده باشه این رو دیگه اعلامه نمیدم، الان برای آمادر ماهد بخص اصلی مادر ماهد معذفی مختلف مشهد به اجمال منام شده بحث شیعیان و کتابت و قرآن رو بیدن برای فرصده دیگه اگر که دوستان سوالی دارم، من هستم اینجا که، واقع جا... باید کسی تقسیم بکنه اه... بله واقعا یه خواهشی که دارم فقط راجع به بحثای اینجا سفاقی چون خیلی بحثای علوم هست که من ممکنه ندانم و واقعا در موردش نادان هستم اعتراف میکنم که در این خواهشت خیلی کم دیدانه، بکنم خانموان روشن نیست در نام یا نامہ قرآن در مثلا می یونس اون سورت که در دراصل یونس هست یا اول سوره بر. مثلا همین الان همی بود دیگه داشتیم ابن مسعود رو می ابن ندیم گزارش کرده و سوره تبارک نظیب یه دیگه بود این آیه اول سوره، جا میگیم سوره و الله و عهد شکلهای مختلفی برای صدا کردن سوره نو گرفت الان شان بینید سوره داود چه سوره تو مناتوب، تو نسخه ها به سوره ساد میگن سوره داوود، تو نسخه ها، میگیم سوره دا داوود. سوره سلیمان نمت. سوره نام یعنی اول سوره نام نمی نویسن سوره موسا و هارون سوره قصصه آره به سوره قصص میگن می نویسن واقعا می نویسن. من خیلی از این مقالاتی که راجع به نسخه های مختلف قرآن چاپ کردم، کردن، مثلا زبان نسخه شناسی مصالح قرآن که الان با همین عنوان اگر اینترنستش بکنید شاید 30 تا مقاله باشه خیلی نسخا رو معرفی کردم چه کاتبان شیعه باشن چه اهل سنت چه نسخه های کوفی باشه چه نسخه های غیر کوفی به یک حدی که می‌بردازن نامگذاری سوره‌ها رو بحث قرآت رو می‌پردازن معمولاً جدول قرآت یا جدول اعتماد راست و توصیفات کلی اون نسخه رو می‌بردازن می‌گن عملی قرآته اونجا شما این بعضیشو می‌تونید این نام های متفاوت رو ببینید تعدادش هم خیلی زیادی، یعنی فقط یه با این تنوع رو یه مندار که نه فقط مثلا بهم کنه ترکیب این محسوس در اصلا نزول نبوده نه ابدا فقط منصوب است به امیران علی السلام که ترتیب سواله ایشون بر اساس نزول بوده ولی اون دقیقا چه شکلی بوده رو نداریم یا در تاریخ خوده، در تاریخ یعنگ یه ترتیبی از همه را نوزکی که کاملا جهنیه و نه ترتیبش، ترتیب نزوله، نه ترتیبهای دیگه متعارفی که ما میشناسیم یک شکل عجیب و غریبی دارست کرد کارو بحبیش کنیم براماریم ما از ابن مرسول ترتیب نزول سراغ داریم یه ترتیب سراغ داریم که مال دا خودشه با ترتیب نزولهایی که منشناسیم، بسرد و سرد من از حجم صحبان چیه؟ ببینید من اینجا ادعا نکردم که قرآنی که در اختیار ما هست متنش و در متنش مطلش هیچ حق نزده متنش عثمانیه متنش همه قرآنی که ما داریم متن, متن افتی مسئول نیست اما یه مختار دواجه شروع اینو خیلی کوچیکه یعنی خیلی خیلی مهمه به خصوص برای ما که در واقع طلبه دین هستیم اینو باید از این جلسه بیرون کلا ذهنمون رو با اون لحظه‌ای که اومدیم تو جلسه متفاوت کلا اون چیزی که میدونیدتون پاک بکنید شما حتی یک نسخه تو عالم نمیدینید من شاید 20 هزار نسخه قران میدارم مثلا کارم اینه صبح تا شب کامپیوتر باز میکنم تا وقتی تمام نسخه بیینید یک نسخه تو عالم پیدا نمیکنید که نش با قراعت هفت از باشه تا قهن پنج و ششون انتظار این که قراعتش اون باشه که ما الان میخونیم نداشته باشیم ولی متن مطم یعنی از افتدای از آیه اول سوره بقره تا آیه آخر سوره بقره، همونی که عروه مادر این فرق میکنه ممکنه یحسب و یحسبا باشه ممکنه نحگی یحیی باشه ممکنه وستا اوسا باشه این ها افتراعته اختلاف دراحت ها، برای کسانی که با اختلاف دراحت رو و سیستمش هاشمان هستن که چیزه کناختش پذیرفته شده رو ایه بنابراین ما توی این قرآن با خود متن اپنی مسئول رو به ما فقط با ترتیب صور ابن مسئول موازه دیدیم ترتیب آیات تو رو ترتیب آیات هم حتی یک تونه جلو عقر یا یک کلمه فرق بکنه هم که نیش تو باید دوستمون اینجا خیلی وقت زیادتر میخواد. شما تو چهار تاریخ گلندو دویی کنید من ازشون اگر از دوستان خود باید میخواستی در زمان چرا با این را قانون بود. حتما که الان نمیشد. خاطره چه که اون‌ها این تصدیق داشتن که, که اصلاً نمیدونم. چرا این تحقیق باید کردن نمی‌دونه. یک چیزی که حد می‌زنیم اینه که به طور کلی از سوره های بزرگ شروع کردن به سمت سوره های مکی و مدنی هم قاطیه یعنی اینجوری نیست که اول مکی‌ها باشن. सात ماده یا به عکس اینجوری نیست به طور کلی روند از سوره های بزرگتر به سمت سوره کوچکتر اما که چرا این ترتیب عثمانی انتخاب شده قرن اول اینا نمید. در مود ابن مسعود هم ترتیب ابن مسعود یا ترتیب ابی یا ترتیب ابو موسی اشعری اینا ترتیب های مختلفی هستند اینها مال خودشونه ترتیبشون لزوماً نزول نیست ترتیب اون آدمه، هم که هم یعنی زید که کارپرداز عثمان هست و این ترتیب رو اختیار کرده با صحابه اونا هم بر اساس ترتیب نزول این روش بهش نرفتن ترتیب نزول یه امره ترتیب عثمانی ابن مسبوط اوغری و سایر صحابه ان یه امر دیگه است فقط, و فقط ما شنیده این در روایات که امیرالمومنین علیه سلام ترتیب بر اساس نزول بوده است ولی خودش که اینم ندیدیم بعد رفتیم به سوال اون دوستمون که این برد. بله بله. من محمد کتاب هستم ولی من از ناشر و پشترانی که خواسته آلو و آسان خوز رزدری هستن اونا باید حسنی بگیرم چرا برای فروش یا توی بعد از کتابکانه ها مثل خود کتابخانه آسان خوز دانشگاه ها ملی مدی اینجا جاها خودشون اونا یا خریداری کرده یا احدا شده اما اینکه اشخاص بتونم به خران واقعا من نمیدونم براش وجود بزید داره آن سایت هست که اطلاعات مختلف و تاریخچه قرارات اینا اونجا اومد دستکت اطلاعات اولیان رو اونجا من چون رو بند دارم بلند برسیم بلند هم خوبه خوبه بلند آها میگن اون نقاط قرمز رنگی که توی کتابت اون ما این بحث رو بهش نپردازیم این این نقاط رو بهشون میگیم نقط الاراب ما یه نقط الاجام داریم که به ما نشون میده مثلا این کلمه رو باید لوهگی بخونیم یوهگی بخونیم مثلا یا توهگی بکنیم ت نه میگیم نقط الاجام اجام رو نقط میگن وقت میذاره یه نقط الاراب هم داریم که این نقط الاراب همین حرکاتی است که اعراب رو مشخص می‌کنه اعرامی که الان ما میذاریم اصطلاحاً اعلال اعرام خلیل ابن احمدیه همین حرکات اعاویی اع که میذاریم این تو قرن اول، دوم، سوم رایج نبوده درست تو قرآن ها دوست قرن اول از یه سیستم خیلی افتدایی اولیه استفاده بیکردند یه دایره های رنگی میگنشدند به این هم میگن اعرام عبالاسودی تنصور به عبالاسود دوالی که میگوین از احمدی علیه السلام این که یه دایره قرمز میگذاشتن بالای حرف نشانه فتحه زیر حرف میگذاشتن نشانه کسره و جلوی حرف که میگذاشتن نشانه زنبه بود. من تمام این اعراب ها رو سر کردم بخونم و قرائت رو در بیارم و توی این متن اون رنگ قرمزشون بدن که در چه اعرابه کدون کلمه چه بله این نقطه قرمز رو کجا بود؟ ش... زیر شین بود. آه. خب زیر شین باید کلمه کسره بده دیگه. بله بله در موقع کتابته. ببینید این نقطه های رنگی همزمان با کتابت نسخه نیست. کتابت نسخه بدون رنگه نقطه های رنگی بعدا ممکن خنجاز سال بعد به اون نسخه اضافه شده ما حتی نسخه هایی داریم که بدون نقل اعجام بدون نقل اعراب واقعی موندان الان اعراب خب دوست ای برای اومدم شما بفرمین اگر صداتون تو میرسه بفرمین تا رو میرسیم بفرمین تا بلنگو رو میرسیم بلنگو یه هزار و نفتد و سال پیش یه نسخه نیست شونزده هزار دست نوشته و برگ نوشته در صنهای یمن کشف شد هزار و و هفتاد وقتی که بازسازی میکردن مسجد جامع صنها رو بر اثر بارونی که شدید اومده بود و دیوار مسجد نم کشیده بود و خرام رو که میکردن در طبقه فوقانی دیوار غربی مسجد برگوشته‌های زیادی از قرآن‌های قدیمی که برای اینکه بهشون بی احترام نشه اونجا دیخته بودن که مثلا احترامشون نگهدی چه شده از بین نبرن نه مثلا دست و باز این ها مونده بوده اجیده برای برای می‌کنم من دو سه بار امروز اسم کلمه نگه مسهم یک را عوردم در سنها اینا کش شده از این ۱۱۶ هزار برگ از سال ۱۹۸ دو تا گروه آنمانی اونجا مستقف شدند و این ۱۶۰ درد رو جدا کردند قرآن‌هاشو مثلا کتون متعلم به کدومه و توش خیلی قرآن پیده شد توش 22 تا نسخه هجازی در آقل این نسخه های هجازی خیلیشون ۴۵ درد 7 درد مثلا نهایت ۲۳ برد هستند ازشون باخت بوده هیچ کدوم ۲۵۰ نوبر باقی نمیده بین اونها تمام اونها فقط یکیشون یه پوست دولایه هست، یه پالینسیستن پوست دولایه به این معنی که یه بار قرآن رو روش نوشتن فقط ام قرآن نمیشود میتونه متن دیگه ای ریاضیات اینا باشه رو پوست می نوشتن بعد به دلیل به اون پوست نیاز داشتن اون نوشته رو پاک میکردن و می شستن. دوباره یه نوشته دیگه می نوشتن به خط سریانی یا اتفاقا اون این نسخه دوباره قرآن نوشتن ولی اون که در فوز نفوذ کرده بوده به اثر شستشو به صورت کامل از بین نرفته بوده و بر اثر اکسید شدن با اکسیژن هوا بعد از حدود 200 30 سال 300 سال 400 سال یه رنگ پاهوانی زردی از خودش باقی گذاشته الان که ما به اون پوست نگاه کنیم دو تا می بینیم یه لایه زیری بینیم یه لایه رویی بینیم من روزون رو لایه زیری مصحف صنعا رو به شماره صفحه هم برای یک سرحهش رو اینجا نشون دادم توی چیزی چیزمون که اون آیه فعیمتانه احدان من کن مریضن رو میخواستیم بخونیم اون تنها نسخه اینه که متنش تو دنیا متنش هم متن غیراثمانیه یعنی متنش دوش اختلاف روایتهای منصوبه به صحابه داره با متن کنونی ما بود خطابه به صد در صدر صدر. یه ویدیو، چند تا ویدیو من در بودی هم در کانال تلگرام هم می‌کنید ببینید که چرا چه این اتطاق رفت داده و توجیه چیه هم و جیوب رو نمی‌دونم تایت‌های آفارات رو این‌ها می‌کنید این‌ها مفتن بریم آه کتابش هم چاپ شده کتاب به عنوان مصرف صناعی یک مدن کامل تمام اکس‌ها هم عکس رویی هم عکس زیری و ه من به خیال خودم جواب دادم ممکنه شما بخونید بگید این سوال من کلا به به کار نمیدارم شما بگید این سوال برای من جواب شده من به سینه خودم تلاش کردم توضیحی که چرا چنین اتفاقی افتاده ولی و و قریبی نیست شما اگر به منابع خودمون اینا رو دشمنان ما نمی نوشتن منابع اسلامی همه رو نوشتن قرن 2 3 و 50 مراجعه بکنید از این روایت های گزارش شده ما عراق پیدا که ما شاید. شاید. آمده که باید. شاید. راجبه؟ آمده؟ تلگرام تلیگرام بیداره من بدنی تلگرام به من در که کانال دارم. اسمش به ژنگیسی شاید اون باشه اطفای کلمیدیا به کلیگوشت به همداری پیدا میشه. این با توش نسخه شناسی نیست داره دو ها می کنونم من نسخه ندیدم حتی نسخه تمام نسخه های منصوبه به عرمه تو دنیا تباید من نسخه دادی و یه مقاعده که در نوشتم نشتم به عرمه اینگریسی و به خواهرسی چاپ شدید راجعه نسخه های من تمام نسکه های تفیدونی ها میگن این نسکه به خط ماخلی حتی همین نسخه رو گفته میشه به خط امامالیه ریسان یا به خط دیگر اگر یک هست تمامی این ها مکنش همین مکن اصمالیه یک جونه کلمه اختلاف اتراعت موجود داره اختلاف اتراعت مثل الیاسین و آلیاسک اینا جزو اختلاف اتراعت سرد شده است. رفتیم به شیع و سنگی نداره یوهی و نوهی و ولی اینکه مثلا یا ایوهن نوی بند ما اون زل ایلهی که یک داره اینجا اضافه داشته باشه که مثلا راوی از امام نمی کنه که ها کذا و داره اون زل از ما چنینچین رو توی این نسخه ای از منظر نسخه شناسی چنین چیزایی بسید ولی که های اخیر یعنی مثلا دوره قاجار و سفرگیه حالا اینو من برای اولین بار توی یه رفتانه دارم میگم اما این پیش خصوص در اومده به هند که اینا این روایتهایی رو که تو منابع قدیم می‌دینند یا حتی روایت‌های خیلی خیلی متأخر مثلا نمیدونم اسم کتاب درستان‌المذاهب رو شنیدیم یا نه که دو تا سوره جعلی توش اضافه کرده و می‌دهی که اینا سوره ولایت داریم و سوره‌ی نورنگه که کاملا مضمون شیعی داره اینا مدنشم نبشیده، این هم مثلا حول دیویستت ساله پیشه یه آدمای خیلی شیعه های سران درجه یکی تو هند مثلا قرآن نوشتن بعد این دو تا فودام اضافه کردن خیلی دیگه مثلا علوی بودن ما اینا رو دوره متأخر خیلی, خیلی نادر مثلا من یه چیزی دیدم که خیلی قدیمی یزد دیدم همه اینا مال همین 200 سال اخیر هستن کسانی تلاش کردن از این نسخه مصادر ولی نسخهای قدیمی هیچ وقت از این موارد خونده نشده این اصلاحاتی که در مصحبه میشه آیا امکان تحریفی رو بکنه آه ببینید آه نه نه. این یه اتفاق خاصه در مصحبه مشهر افتاده قصد اون کسانی هم که چیزی رو پاک کردن کاملا معلومه قصدشون این بوده که ترتیب سوره ها رو درست بکنن یعنی آخر یک سوره بس نمیشه مثلا سوره بقره به آل امران بس نمیشه به سوره نساء بازمی‌شود اینا آل امران و کل بریه‌هاشو برداشتن و آخر سوره بقره گذاشتن و فقط اتصال بقره آل امران رو باید درست اونجا رو دست‌نوشت نمیش جدید نوشتن و واقعا اونی که نوشتن همون بقره است یعنی یه بقره دیگه ای نمیشه آخر همین سوره بقره که آیت 286 آیت آخر سوره برام همون امکان بله امکان شما مثلا لازم نیست این نسخه مصری مشهد باشه شما هر قرآنی رو میتونین بردارید هر چی خاصش توش بنویسید بله میخوین چند تا کلمه تو حاشیهش بنویسید یه چیزی رو پاک بکنید اینکه شما بدونین این کار رو بکنید امر ناممکن نیست مقدوره ولی که نسخه ها اون که رسما در, در یک جایی در یک قرائتخونه یک مدرسه ای یه هرنی خانگاری بسط جدی نگهداری می شده من به اندازه‌ای که خودم راحت کردم که چیزی ندیدم تا دلتون بخاطر اختلاف قرائت هست تا و حتی شیعا من تحقیق می کنم امروز فرصت نداریم الان کلی تصویر از قران هایی که علمای شیعه کتابت کردن و کل از اختلاف هست آماده کردم اختلاف قرائات رو تو مغل یا تو حاشیه ذکر بکنه یه چون عزیزی نیست وقتی ای یه کلمه رو غلط خودش از این سیستم اطلاعاتی نه الان اجازه بکنم یه سی علی یا یه جایی کم بکنن این چطور نه و نمی‌دونم باره یه سوال خیلی مهم شما خیلی وقت نوبت کردید حالا بگم حالا بلند بکنید من هر تا در به من نه در نسخه است در که از اون من از چیزی بعد اگه به سراغ روايات ها منابع اهل سنت <سؤال> تا <سؤال> گزارش از نقایص خود جوادی جایه آریات که نگذریم ما به خاطر تلفن یکی تشکیل یاد قابل یه جور گزارش شد 8 اینه فرض بود متفاوت یکی دست یکی میگین قطعا ما از کجا میتونیم بفهمیم قطعا آقای علامه تبا طب بله بله من که, من که سردر نمیارم مرحوم تبا طب این مسئله رو تو تفسیرشون گفتن همچین با یه کمی چیز با احتیاط شاگردشون آقای حسینی تهرانی تو مهرت ها خیلی با قطعیت گفتن گفتن استاد معلامه میگفت قطعا این دوتا آیه جاش به اینجا نمیخوره و عوض شده ولی ملاک چیه؟ ملاک اینه که فرمون تبا تبایی بگه یا مثلا شاگردشون آقای جوادی آمولی بگه آقای جوادی آمولی سب در سب رد میکنه تفسیرشو دیگه ما چجوری میتونیم بفهمیم که یه آقایی به اینجا نمیخوره ملاک چیه؟ همین قطعه که من نمیت... نمیتونم بسن جمعش با قبل و بد وقت شاگرده من مثلا آقای جوادی این رو قبول نمی کنه اینگه من قطع ما راحت راحتی نمیتونیم بگیم که چون اینجوری قبل و بعد نمیخوره پس خوره پس غلط عملمون کلمه قهرتون چه داره این یه بحثه این بحث حدثه اما بس نسخه ها بریم تو نسخه ها, ها هیچ خبری نیست از روز اولی که ما نسخه در اختیارمون هست حالا به پیش از عثمان من واقعا دسترسی ندارم به خود عثمانم با اطمینان دسترسی ندارم ولی شواهد نسخه ای که در اختیار ما هست نه در مورد این آیه و آیه ودایعت تو صورت آ... مائده آیه 3 نه در در هیچ جایی تو دی کلمه ازاده و کم آیه جابجا نشون جا نمیدن من مثلا میگم چرا وقتی به من داره اینه که نسخ شناسی حمایت نمیکنه نسخ شناسی با این موضوع اصلا درگیر نمیشه نسخ شناسی نمیتونه تمام روایات های تحریف تف... قران چه در شیعه چه در سنی روایت شده اینا رو تایید بکنه نسخه نمیتونه ولی رواید به شفایی وقتی من گفتم به این جلسه بیام من گفتم راضی به اهمیت نسخه شناسی من یک کوح حرف دارم و گفته بود دارم بکنم راضی به این رواید هست موضوع این نیست الان این من قرم جلسه تمام مشکلاتی کافی رو تو، علیاشی رو تو، علیه یا نه منابع حل سنت وجود داره از نقص قرآن اونا رو حل من مثلا معرفتی نسخه های قرآنی به انوانیم که اینای شاهدانی هستن از قرن اول که نشون میدن قرآن به همین صورت که ما با این مرس سراکار داریم، در دست بوده با همین نشون البته ویژگی هاش رو باید نشون بدن فراحت شدیلی، رسم که من نمیخوام جلسه کوتا تکیف تمام به رایتهای مربوط به زیاده اون لفتهای برمان که توی منابعشی کنی در خودان را بکنم اگر واقعا تمام داشته باشم به من این چیلی جلسه یه جلسه بدن در خودان را میگن فقط کنون رواید ایمان زمان همون یعنی دیدم لازم داره نه نه نه نه این مقدمه دازم داره یه نه خیلی من نیاز من نیاز داره. خیلی مفصله من اگه بخوام رو بگم من دو جلسه لازم دارم حداقل حداقل به این صحبت بکنم که آلمان درجه یک مسلمان چی یاستمی فهمیدن مگه آلمان رسمی ما نه پفار و فارو رو نمیگن اینا تو قرن اول دوم و سوم چه ذهنییتی در مورد قرآن داشتن اول ذهنییت اونها رو باید بشین چه تصرفی در متن داشتن اگه ذهنیت رو بشناسیم اون محمد میتونه این روایت‌ها یه چه شیه چه فرضیه رو تو اون با اون پارادایم اون منظومه فکری تفسیر بکنه که چرا چه یه جواب داره طرح میشه مثل این نمونه کدوم یکی از ما الان اینجا به خانوما بی‌احترامی نشه دارم دارن می‌ورسن کدوم یکی از ما اینجا الان 4 تا همسر داریم 4 همسری رو رعایت می‌کنیم و و انجام می‌دیم و با یک اتفاق و علنی هم میگیم. چهار همسری یک چیده منکری تلقی میشه الان تو جد، ذهنیت ما نمیگم از ار فقری، درست یا خالط از ار فقری، فقشی اینو اجازه میده ولی یک چیده ناپسندی تلقی میشه الان تو جامعه اون تو زهنیت، ما باید زهنیت مدرن. ولی اگه شما باریم تو قرم چهار و پنجم، هیچ کسی از اینکه که چهار همسر داشته باشه یا دا چند تا اثر قطعی داشته باشه احساس نمی‌کنه یه کار منکری داره انجام می‌ده یعنی با یه ذهن با یه منظومه فکری دیگه‌ای داره این زندگی میکنه. من می‌خوام بگم در مورد ربوبات تحریف باید این ربوبات این دو تا است تا منقدر محدودش نمیکنم، به این ربایته امام زمان اینه قرآنی که به کل سیستم اعله سنت که ربوبات تحریف اونا انحرف می‌کنن می‌کشونن این منظومه رو اگر جزئیاتش رو او بشناسید اون وقت من می‌تونم تفسیر تحریف خودمو توی تحریف, خود تحریف کاملام ناقد شخصیه یه تحلید انسانیه اصلاً از آسمان نیومده کان تو نبیشه دیگه داره اونو وقت رایم میکنم این چا بیترسی دارم این را بیترسی دارم گفتی مختصرشو به من دیر سلامون الان یاسین و سلام یاسین هم یکی از قراعت های بسیار کوهنه باوردارکت نداره ولی قرائت آلی در منابع شیعه ترجیح داده شده ذکر شده اما توجه بکنید که اصلا لازم نیست شما در قراءت آلیاسی به قراءت‌های های شاز و قراءت‌های خارج از سبعه و اینها پنابارید تو خود همین قراعت هفتانه قراعه هفتانه که رسمی تر شده و شناخته شده تر هستن قرائت عالی وجود داره و در بسیاری از نسخه های کهن به همین قرائت عالی از جمله فکر می کنم تو همین نسخه متفق نشدم قرائتی که ایراد ن... گذاری شده عالی یاسین بوده حالا من باید برگردم یه بار مطمئن نگاه بکنم این قرائت خیلی معروف است و خیلی هم بخوام البته قرائتی هست که ترجیح شیش خیلی به من می ولی لزوما این چیزی نیست که شیعیان ساخته باشه بعد برعکس قران هست که فقط مناقب شیعه ذکر شده و یا مثلا سوره نوح هست بعد تقومتنا الذين ولم منكم خاصتا اگه این سوره از هست که دیگه این تلاوت رو اصلا در واقع میشه مثبت در تصيبن که قرارو منکن خواستادم این یکی جوی جا باید این قراعت دتوسیبندن و لا جزء جزق قراحتهای صبعه نیست جزق قراحتهای خیلی دوره حتی خارج از فکر کنم چار درگانه هست ولی در جزه اتفاقا محمود حبوطهایی هم حبوطهایی خیلی کم به قراحتها میپردازه به خلاف علمای دیگر قدیم شیه که خیلی قراحتهای رو نمید حالایی صراحه مشهوره تو فین که خیلی کم بهتراوی شده به این آیه سوره توبه تو یا انفا حافظ قرآن داریم نه به این که میرسه این خلاصه ترجیح میده و تفسیر خودشو بر اساس همین اطلاق خیلی در جالبه در در این دراتی در ادامه سوالی شما به ادیاس و ادیاس کردم که تاکید می‌کردم که شما که به نقطه نه، علامت پایان آیه. حالا علامت پایان آیگایی چهار تا نقطه است یا یک سه تا نقطه می همون علامتی که برای اون می کنید درمان بسم الله قرمز نه. ب... قرمزی که شما دیدیم بسم الله نبود اون نام سوره بود نام سوره رو یه بر برمی‌گردم اینجا تصویر رو شما ندیدید قطع شده ببینید نسخه حجازی بسم الله رو می‌نویسه آجون مثلا مشهد شما می‌تونید این قانون ببینید خود نسخه رو ببینید بسم الله رو می‌نویسه پایانش علامت پایان آیه می‌ذاره ولی یه سوره که تمام میشه سوره جدید که می‌خواد شروع بشه هیچ‌چی چی اون نیست خالیه بعداً کسی میاد یا مثلا یک آن کسی میاد نام سوره رو با رنگ قرمز با رنگ قرمز می‌گویند اون نام است اون نام است ربع مثلا سوره الملائکه سوره الذاریه اون بسم الله نه بسم الله فایده بود و پایان آیه داره فایده این جلسه دوستمون میفرمائند که طبق تحقیقاتی که انجام شده از ضمن دوست محترم آقای خامه‌گر که راجع به نظم قرآن و نظم صحابه امین‌ها ارتباط صورت کار کردند اثبات شده که این ترتیبی که الان ما داریم این ترتیب توقیفیه از خارج ما اینو نمی‌دونیم اما این نشون این بس که امروز ما نشون دادیم نشون دنده‌ای بود که نه انگار توقیفی نموده ترتیب‌های دیگه هم هست. فایده این جلسه همینه که ما از حیث تاریخی میریم با سند و وکیقه اونجوری که اینان ما رو تو هزار و ست ست سال قبل وجود داره وجود داشته روبروم می‌کنیم خایده اینه که ما می‌بینیم منابعی که تو قرن اول دوم گزارش می‌کردن که سوره‌ها به ترتیق‌های دیگه‌ای هم بوده، منابع کم بیستن ها؟ خود همین گزارش ابن عزیم و من فقط یه دونه رو شما منابع قدیم و روش خیلی زیاد این منابع این حرفا رو می‌زدن ازو هوا نمی‌زدن واقعا هم بوده که به اون ترتیب بوده من این نسخه مصحف نشون دادن یکی از نسخه از صفحاتشون دادن که سوره صافات و سوره رو نشون میداد پشت هم بودن و ترتیبشون با ها این نشون که تو یه هم بوده و چه خیلی هم خراب بود. بوده قرن بعدی چون دیگه همه جا نسخه شده بوده دیگه اونا رو اونا همین نمی‌کنستند ولی حالا من کارم ببخشید یه چیزی کردم من کارم من کارم فقط من پژوهشگر تاریخه من فقط ذره بین می گیرم به سراغ اصل نسخه ها میرم گاهی لازم میشه ببینم منابع اسلامی آیا چیزی دارن که به این نسخه ها بخوره یا نه یعنی من متعهد نیستم به این که اگر کسی گفته به من توقیفیه چیزی دیگه پیدا نکنم همه می گن اصالی من میگن اسامیه سورات توقیفیه ولی من اینا تو نسخه ها می‌بینم نه واحد. همه میگن انگار آقای معرفت مرغوم آقای معرفت میگفتن آقا قراعت هفت از آسه از روز اول بوده بقیه قراعت ها هم همه مثلا جعلیه ولی شما من من میگم بی سی هزار نسخه دیدم یک دیمه نسخه یه سند عینی واضح همیسا همین نسخه یا نسخهای بعد. حتی شیعیان پیدا نکردم که قراعتش از بطاقه هم تو قراعت هم این یعنی پرجویش سندی و بچه کار من اینه دوست سه گفتن که ملاک شمارش آیات چی بوده که مثلا تو برخی از قران ها یه آیه رو با ای دو آیه تلفیق میکردن من با این مورد جزئی ای الان کاری ندارم فعلا اولا که ملاک معنایی بوده یعنی اون کسانی که در مکتب کوفه یه تقسیم بندی از آیات سوره مثلا ماهده یا دیگری می‌کردن احساس می‌کردن که اینجا تو این قرنه اول احساس می‌کردن که اینجا پایان منفصل یا اینکه با اون سج و فاصله ای که همهشون به قابانون خرد میشن باید در اداده اونا قرار بگیره گایی وقتا بین این شرق و شرقی این استنباه اختلاف نظر بوده مثل مواردی که ما توی وقت و ابتدا داریم الان مثلا توی آیلی حق سوری آل امران اختلاف نظر تا همین الان وجود داره که و ما یه علم تحویل لهم اللهم و روزه خون افره آیا ما باید بر اساس اون ایده که برات بر الگاه یا باید اینو ابتدای دوره مستنفه بگیریم این این نظر که خب مثلا علامه طباطبایی با بحث شاگردانش نظرش رو فرق میکنه دیگه این اخلاق نظری ای که در وقت و ابتدای درون آیات وجود داره در خود پایان آیات هم تو قرن اول بود سبب شده که بین مکتب کوفه که روابط مکتب کوفه میرسه به امیرالمومنین علیه السلام. با مکتب بصره با مدینه مدینه‌م خودش دو تا سیستم داره <تصفيق> مدینه اولا، مدینه اخیر با حومز و دمشق و مکه این هفتا، هفتا هفت تا نظام مختلف داشتهوشن از نیود اینا از نظر تاریخی کسایی که با سند نسخه و اینا میخوان کار بکنن من گواهی خودم رو میگم من نسخه هایی رو که دیدم تو همین 100 سال پیش بیشترین نسخه ها با مکتب بصره هماهنگ هستن یعنی مکتب بصری تو نسخه هایی شماره آیات رو بیشترین نسخه با مکتب بسته می‌میشن از دوره اواخر دوره عثمانی مکتب کوفه یعنی مکتب منطوب که می‌رسید بروایدش در امیران اومدیم خیلی بیشتر با می‌ومده و زمانی که مصحف قاهره هم منتجر شد در حد ۱۹۴ میلادی بعد از سقوط دولت عثمانی تو مصر مصحف قاهره تد می‌شد، اونا برای مکتب باص کوپرتور با مارک دو کوترو الان با قرانامون تو این منطقه شهر جاو ارقام انا غالبا دیگه با مکروتر علتش برمیگرده به استنباطهای اولیه‌ی اونها ولی تو نسخه ها همه این تنوعات رو ما می‌بینیم بیشتر از بس الی می میگن چه جوزفه کنار فتیر آت، اتفاقاً شده و جوزفه نقطه گذاری آی نوستو آم، هشت نوستو هر دو تا آت شما می‌بینید. پس اسبتی ولà پت بگیریم. چون چهار دندان آن شمیکیه، می‌توانست به هر دو تا آت کندو بشه و با وجود. بعد به فرمان. آباد. آبی فرمان که در مورد قرآن شیعه و صنیع این اتفاقات وجود داره چه هست؟ منظور قران شیعه قرانی که یک کاتبی که مسلما میدونیم شیعه بوده اون رو کاتب کرده من چیزی غیر از این مرادم نیست یعنی منظورم این نیست که یه قرانی رو که مثلا در منابع شیعه گفتن این آیات رو اضافه دارین این اوراد کندره توی کتابی مثلا حدیثی اونا رو منظورم نیست منظورم از قران شیعه قرانی است که یه عالم یا یه کاتبی که خودش ادعا از شیعیان هستم یا یک گ یعنی اقراب که دانای علم اختراعات بوده معمونه و میگه من شیعه ام یا نه خودش نمیگی شیعه ما میگیم کش می کنه میبینی شیعه است اونی قرآن رو نداشته باشه الان مثلا در همین مشهل قرآنی هست که در واکنوت نگارده میشه که یک از شاگردان شیخ صدوق کاتبت کرده به نام ابو البرکات علی بن الحسین الحسینی اون علینا جور بوده در خراسان جوری هم دنبال همه جز جزءهای 30 جزء قران رو کاتابت کرده همه هاش رو امضا کرده گفته کتبه علی ابن این آدم ابو البرکات شما میشناسید یعنی شما میدونید که شیخ صدوق حکومت مشهد سال 367 هجری امانی خودش رو املا کرده امانی که حدیث املا کرده ما سند روایت از همین آدم یعنی بر کی املا کرده برای ابو البرکات جوری علی ابن حسین روزی جوری این آدم یه آدم مشخصی ما مطرح اینیم شاگرد شیخ صدونه و اسمش تو منابع دیگر هم اومده به روایت‌های دیگر رو همون نقل کرده در کتاب خطراوندی خرایج چه جایی بود خب آدم یه آدم حالا یک قرآن نوشته من که قرآنش که نگاه می‌کنی می‌بینیم که بسم الله‌اش رو مثل سنت جای نای نمی‌ذاره یعنی آیه حساب نمی‌کنه و همون سیستم کتابت می‌کنه قرائت همون قرائت‌هایی که دیگران در قرآن‌هاشون می‌نویسن ون 한번 한번 قرائت استفاده میکنیم قرائتش خاص نیست مثلا هوالذین يرسل الریاق بشرا بین رحمته بشرا در این آیه که سه بار با این تعریف قران اومده سه قران اومده سه نرم اومده احتمالاً بشرا بین سه تا قرائت دیگه هم داره نشرن بین نشرن بین نشرن بین سه تاش از ماده نشر معنای فراگیرندگی یکیش که قرائت حفص از هست قرائتش از ماده بشارت و مجده است ما می‌بینیم که ابوالبرکات مثلا در قرآنش قرائت نشرن رو انتخاب کرده یعنی اون رو ضبط کرده اون رو نوشته یه دنیای قرائتی که در منابع دیگه کاتبان دیگه از اذن از این جهت که بخوام به سوال شما جواب بدم کاتبان شیعه که یک مثالی که به نظر شاید 12 20 تا قرآن تو همین مشهد شما می‌دونید از علمای قبل از قرن نه دوره یوری و قاجار نه علمای خیلی قدیم قبل از حمله موقت پیدا بکنید که اینا کتابت کردن و هیچ کدومشن هم قراعت هفتن بشن مثل احضا سنت بقیه قرائت‌های های متنفه اختیار و مثلا انتخاف کردن یا قرائت ابو رو که قاری خیلی مهم بسره بوده اون رو مثلا در شکا بسند نوشتن از این جهت برآن شیعه فرقی نداره اگر چی بوجوده من چند تا از مقالات اینها رو یعنی چند تا از نوشت آثار اینها رو به صورت مقاله مقاله معرفی کردم اگه شما با عنوان نسخ شنانسی قرآنی با این عنوان سرس مخونین اکثرش تو مجله آیه هاشوهش چاپ شده خیلی از اینا راجع به کاتبای شیعت یکی از نمونه های که آدم خیلی محروف نیست که در سخزبان الان امامزاده یعنی به واسطه یک مقبره امامزاده یحیی معروف است این یکی از علمای بزرگ شیعه است که یحیی بن حبیب‌الله حسینی از 사ادات آل زوار است و با 사ادات حسینی در نیشابور اینا اختلاط پیدا می میکنن اینا نسلشون مهاجرت میکنن میان به بیحق. این یحیی بن حبیب‌الله حسینی خودش و پسرش و نوهش از علمای و نقیل شیعیان بودن در صورت خیلی هم متمول بودند پسرش همون کسیه که پول داده برای این مجنال بیان رو مذهب تبرسی بنویسه یعنی اسپانسر مجنال بیان بود تبرسی اول تفسیرش اسم این آدم رو میاره میگه من این ابو منصور محمد بن یحیی بن هیوت اللهی حسینی خیلی مثلا ازش ممنونم خانواده <تصفح> دیگه‌شم خیلی حمایت کرده این خاندان شیعه و اسادات و عالم قرآن کتابت کردن من قران پدربزرگ رو یعنی یحیی بن هیبتو رو یه مقاله کردم و قرائات‌هاشو و ویژگی‌های خطیشو همین نامگذاری سوره‌هاشو این رو شامل کردم 90 هم جداگونه دراسنقص الان خوشبختانه نصف بیشتری این جزبه‌هاش باقی مونده خیلیش خوب ممکنه بر اساس در اتبابات و خورده باشه از بین ولی موجوده این یه مثال اخرشه می‌خوام چند تا هستن اینها ابو جعفر موسوی هست همین ابو برکات Uh, حسینی هست uh, آقای ابو نعیم بیهقی هست اینا uh, اسماشون رو با همون کلامه یه کتابی هم uh, پارسال uh, از منتشر شد اینا قرآن های کوفی در ایران عنوانش اینه من تو اون کتاب uh, اولا مسلم مشهد رو اولش معرفی کردم به امان یه اثر پیش کوفی ولی نسخه های کوفی و کوفی ایرانی که تا قرن نوشی نوشته شدن و الان در کتابخانه های ایران نه فقط آساناست نگاهداری میشن رو به همین شکل محتوایی سعی کردم معرفی کنم چون قران های شیعیان هم اونجا هم هست. ا که یکی پایانی که راجع به قران های شیعه ها بود بفرصت نشد جای دیگه‌ای من یک ارائه ای دادم در قوم مدرسه مدرسه عالی فقه امام محمد باقر علیه السلام که وابسته به آیت الله زنجانی شبلی زنجانی هست. میگم دو سه ماه پیش اگه کانال ایدهای اونارو برین مدرسه فقه امام باقر خودم رو کانال خودم نگذاشتم فایل کاملش هم صوتیش و هم اون پاورپوینتش اونجا هست. فقط راجبه قراغات، البته اونجا راجع به قرآن عهد سنت هم هست بعد نصفش راجع به شیع است که میخوام میشون بدم ایش تفاوتی وجود نداره بله بر. طبیعتا من چون نمیتونستم فقط در ایران میکرسم که برقیل مستشقیر هم رسقه شناسی قرآن انجام دارن آیا یافته های اونا رو بندرسی کردیم از اندازه توان خودم چون همین الان هر روز در این موضوع خیلی داره بحث و گسرهش پیدا می‌کنه چون پنج 5 سال منشوراتی که تو این 5 سال منتشر شده شامل برابری می‌خواد با اونایی که توی 25 سال اخیر قبلاً خیلی حجمش و توجه به این امر هم در میان خاورشناسان زیاد هم در میان به خصوص مسلمانانی که تو جهان اهل سنت زندگی می‌کنن به اهمیت تاریخی این و برای اثبات اینکه واقعا ما قرآن رو قرن اول داشتیم چون در میان برخی از خاورشناسان از کامرشی از سال پیش بحث‌های خیلی جدی پیش آمده دلایل خیلی محکمی هم ارائه کردند که نشون بدن قرآن واقعا تو دو قرن این چیزی که ما الان داریم نبوده قرآن این شکل کنونیش حاصل پایان قرن دومی مثلا شما مکتب افکری ونز رو یا اون تجریه نظر طلبه‌ها رو نگاه بکنید عدلشون اینقدر جدیه واقعا به راحتی نمی شده یکی از دلایلی که خیلی کمک کرده هم مسلمانان همه هم مستشرقانی که عذره تاریخی دنبال اثبات وثاقت متن قرآنی هستن همین رفتن به سراغ این نسخه هاست و نشون دادن این ویژگی در نسخه نسخه‌ها هست از یک املایی که نشون میده این ها در قرن دوم و دیگه وجود نداره این هم نه که من بازیشون نشون دادم اینجا اینا فقط تو قرن اول یا آزمایش های علمی که دیگه بحث اعتقادی نیست آزمون علمی رو یا آزمایشگاهی انجام میده که اصلا مسلمان نیست مثلا ما با آزمایشگاه آریزونا و جورجیا در آمریکا فرستادیم، آزمایشگاه آکسفورد، آزمایشگاه زوریخ دستوریست. اینا یک چ... یک کار کاملا مادی دارن انجام میدن. نتایج اونها نشون میده که این محصول محصول مینه اول قرن اول یا نمونه دوم قرن اول مال قرن سوم مثلا. لذا این تجزیه ها در کل جهان انجام میشه. من به حد خودم سعی کردم در این تحقیقاتی که توی پاونی، پاونی ها و در این تا اون زمانی که کار کردم مهم بوده اشاره بکنم یعنی یه کار جامعه‌ای باشه که بتونه برای خبر خواب... اتاق خیلی خبرش نصب ده این قرآن هم یادداشت نوشت در وب سایت حس مثلا مانکرکوچ مانکرکوچ که تهیه کردن که ایران به خاطر آمده که تا که خود آسان خود ترجمه کرده و چاپ کرده خیلی هم بشناسه اصرار داشتم که پیش یادداشت خیلی مفصله داد اهمیت این کار و و وزانت مثلا علمی که انجام شده یا آقای دروش در نسخه شناس های فرانسا هست که روحانی نمیلی پاریس که کلی نسخه شناسی گرده و خیلی شعرت داره در میان اهل سنت هم بعضی مثلا مثل آقای نه. قانم قدوری الحمد یا داشت روشتن در مده قرآن من تلاشم این بوده کمابیش ولی هیچ وقت این کافی و کامل نیست قطعا نباقی چیزه من یک کتاب ده سال، دوزه سال پیش منتشر گردم به نام قرآن های عصر اوموی این از آقای دروش ترجمه شده، ناما قرآن های حجازی هست، این نسخه، این کتاب ترجمه، این هست یکی هم کتاب مصحف سنهاییک مصحف سنهاییک رو مستشغان ننمشن. دو تا ایرانی که در غرب زندگی میکنن، این تقریب انجام دادن من یک مقدمه برش نوشتم و متنشو رو ترجمه کردم به جز این مقاله نه بقیه مقاله ها مقاله های تعلیفی خودمه که به اون کارهای اونها در جایی که لازم بوده ارجاع بوده ببخشیم من برای اینکه پیسست میکنم که می‌تونم باشم که سوال جواب بدم سوال هستند فردیه بله میگم سوال فردیه اگر از بداید. اگر مطوری کلیه دیگه یه هست که به من به فردیه بله بله بله بله من قد بحثمون تمام شده خیلی ممنونم که حوصله کرده میدانم که خیلی من خسله نشدم چون سخنان دستم ذرای ها خیلی خسله کننده هست خوبی جدیدی برای دوستان و معافیان به همراه داشته می بله بله بله می دان دیگه مشکلی نیست من هستم اینجا و سوالت هم جواب می ده.